الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله تیبین تاهرین المعسومین لاسی ما بقیت الله فی الارزین اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة و يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك يا يوحنا و رحمت الله و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 السلام علی الحسن و الحسین شباب اهل الجنه اجمعین السلام علی علي بن الحسین زین العابدین السلام علی محمد بن علي باغر علم النبیین السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام علی موسی بن جعفر السلام علی بن موسی الرزا السلام علی محمد ابن علی الجباد السلام علی بن محمد الحادی السلام علی حسن ابن علی الزکی العسکری السلام علی حجت بن الحسن القائم سلام علیکم يا آبا عبد الله و التي حلت في عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا آخر الا مني لزيارتكم السلام علی الحسین و علي وعلى علي ابن الحسین و آلاء اولاد الحسین و آلاء الصحاب الحسین. قال الحسین عليه السلام صبرا بن الکرام، فمل الموت واللاگن تره، تعبر رو عن البؤس و الذر إلى الجنان الواسعه و النعيم الدائمة، و يكره ان ينتقل من سجن إلى غصر و ما حول الا كمن ينتقل من غسرن الى سجنن وعذاب ان بي حدثني عن رسول الله ان دنیا سجن المؤمن وجننت الكافر والموت جسر جسرها او جنانهم و جسرها او ال جهیمهم ما كذبت ولا کوذس ضمن ارزت به پیشگاه مقدس مولایمون امام اصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا قبل از شروع بحثم توضیحی در مورد سوالاتی که رسیده ارز کنم نامههایی که به دستم رسید مطالبی که نوشته شده ضمن تقدیر و تشکر از دقت و توجه عزیزان به این مطالب برخی که در ارتباط با بحث است من سری اشاره میکنم اما بقیه رو اجازه میخوام بگذاریم شب های جمعه ولی یکی از یکی دوتا از این سوالات نیاز داره ای بکنم یکی این که بنده نگفتم حضرت نو مقامش از ابراهیم بالاتر است نه اگر یا اشتباه لفظی از بنده بوده یا اشتباه در شنیدن بوده عرض کردم شکل امتحان فرق می کرد. حضرت ابراهیم امتحانش به اون شکل بود که فرزندش را قربانی کند حضرت نوح امتحانش این بود بعد از اون که خواست تمام شد به اون مرحله نهایی. سوار شدن به کشتی رسیدن ندا آمد لا تخاطبنی که آیات شدی شب خوندم دعایه. قبل از اون بله مطرح بود اما این بحث در رابطه با بعد از اون مراحل بود که عرض کردم سوال دیگه ای مطرح شده که باز اشاره کنم مربوط به بحث است اگر صبر انقدر مهم است و به ما دستور داده ان باشیم اون حالتی که برای حضرت زینب سلام الله علیه دست داد که جسم و تن ایشون به گونه ای خورد شد که طبق بیان تاریخ بعد از مراجعت به مدینه اون چنان شکسته شده بود یا ابی عبدالله روز آشورا از حال می در موقع ودای با حضرت قاسم چند نامه به دستم رسید که این سوالات بود اینو تقاضا دارم دقت کنید دو جنبه داره یک جنبه در رابطه با شخص خود است یک جنبه در رابطه با ارزش های اجتماعی حضرت زینب سلام الله علیها قبل از واقعه کربلا گرچه میداند مردم خیلی جاهل و عقب افتاده و منافقان ولی رؤیت اون سحنه اوج جهالت در آشورا روز کربلا و آشورا رخ داده لذا شکوه نمی کند جزع و قضا و بی ندارد ولی واقعیت این است که بدن مال عالم ماده است اگر معصوم ترین معصوم آب نخورد تشنه نمی شود و اثر طبیعیه اثر طبیعی غیر از حالات روحیه همین بدنی که به اختزای عالم طبیعت خورد شده است اما قدرت روحی به گونه ایش که میگوید والله ما رأی و جمیلا این جای خودش محفوظ و اگر مسئله که عیناً در کتب مقاتل قوی دارد این به معنی ضعف و بیتابی نیست به معنی خلسه در برابر گاهی اوج عظمت یک شخصیت گاهی اوج پستی یک ملت که نوعی خلسه حساب میشه اینو ان شاءالله بعد میدم در حد اشاره که توجه داشته باشید این مطالب بحث شده بزرگان روش نظرها ها دادند مسائلی است که ان باید گفت و شنود بیشتری صورت بگیرد خب اجازه بدید برگردیم به بحثمون شب عاشوراست فرصت فرصتی است که حقیقتا اگر چشم دل باز باشد امشب کائنات منقلبه امشب عالم وجود دگرگون است خدایا تو را به عظمت ابی عبدالله قسم می‌دهیم که گوشه ای از اون بینش قلبی را به ما به بفرما که از اون دید به این حقایق نگاه کنیم در واقع شبه حال است نه شبه خال شب اشق و سوز و گداز و توسل و عرض ادب و ارادت است نه گفت و شنود و بحث و مباحثه ولی تکلیف شرعی ایجاب میکند مقدمه‌ای برای اون عرض ادب در ادامه اون بحث ها مجملی هم وارد شوم نتیجه بگیریم عرض کردم یکی از مقامات ارزنده که یک انسان پیدا میکند خود مقام است و در عین حال زمینه می شود که انسان را به مقامات بالاتر برساند مسئله صبر است زیرا در این عالم که ما قرار گرفته ایم یعنی ما انسان ها لازمه اختیار داشتن دو بودن و قدرت انتخاب و حرکت بر اساس قدرت انتخاب این است که در گیر و دار زندگی در نشیب و فرازهای مختلف قرار بگیریم و چگونگی برخورد ما با این گیر و دارها مشخص شود. همون گونه که اشاره داشتم خدایی که به فرشتگان عقل داده است و شهوت نداده میتوانست ما را هم عقلی که داده شهوت ندهد فقط به اختضای خواستهای عقلی حرکت کنیم ولی انسان نبودیم ما هم فرشته بودیم انسان از فرشته برتر و بالاتر است به این جهت که به اقتضای این دو کشش های مختلف چگونه اراده خود را خواست خود را و توانش را دخالت میدهد تا اوج بگیرد و بالا رود امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 98 نهج البلاغه مطلبی دارند که قسمتی از این مطلب در رابطه با بحث ما توجه بیشتری رو میطلبه فإن عطاكم الله بهعافیةن فاقبلوا وان ابتلیتم فاصبروا فإن العاقبة للمتقین سه قسمت رو در این بیان کوتاه دقت بفرمایی. قسمتی از خطبه نود و هشته فا این به عافیه اگر شرایط زندگی شما موقعیت سپری شدن عمر شما به گونه ای بود که با عافیت تو هم بود الان در یک برهی از زمان آسایش دارید آرامش دارید فعلا مشکل خاصی علال در زندگی شما برای شما مطرح نبود فقبلو قبول کنید تسلیم باشید و انبتولیتون اما اگر در شرایطی قرار گرفتید مبتلا شدید مورد امتحان قرار گرفتید که این رو بدانید هیچ انسانی نیست که اگر از خدا طلب رشد و تعالی میکند، خدا او را مبتلا نکند این ابتلاعات برای رشده و گاهی ابتلاعات منعای درخواست فرد برای او پیش میاد میزان توانش در رشدش برای ادامه کیفیت ابتلا مطرح میشه گاهی خواسته از همانگونه که داوود از خدا خواست خدا گفت و برای امتحانات آماده بکن و هر حال در یک برهیت زمان مبتلا می شوید در یک بزنگاهای حساس زندگی مورد آزمایش قرار میگیرید. اگر به این صورت شد مورد این آزمایش ها قرار گرفتید فس برو در یک شرایط خاصی قرار گرفتید فعلا ابتلا و آزمایش براتون پیش اومده فس برو اما در ارتباط با این دوتا فعل عاقبت این آیه قرآنی مولا از آیه قرآن داره استفاده میکنه برای نشون دادن این مطلب به ما عاقبت مال متقین است عاقبت یعنی چی یعنی یک انسان اگر 60 و 70 و 80 و 90 سال کمتر و بیشتر در این عالم زندگی میکند نشیب و فرازهای مختلفی ممکنه داشته باشه اون سرانجامش به خیر می انجامد اون مرحله نهایی که بناست به سوی عالم حرکت کند با خیر و بار ارزنده بسته و سلامتی دین از دنیا خارج می شود تعبیری دارد یکی از بزرگان می پرماید اگر سوار بر یک مرکبی باشید یک مسیر طولانی رو طی کردید اون لحظه‌ای که دارید از مرکب پیاده میشوید مثلا مرکبهای سابق حالا اسب امروز فرض کنید اتومبیل شما اون لحظه ای که از اسب دارید میاید پایین چه حالتی دارید ده روز با اسب مسافرت کردید ده شب در ده منزل خوابید و استراحت نمودید اما حالا لحظه ای آخری است که سفر تمام شد دارید از اسب پیاده میشید با پای شکسته پیاده میشید یا سالم با بدن مجروح پیاده میشید یا سالم با بدن خسته له لبرده داغون شده آزرده پیاده میشید یا با یک روحیه شاداب پیاده میشید مرگ جدای روح از بدن است که آیه میخوانم مرگ جدای روح از بدن است روح مثل یک سواره ای بر این مرکب بدن سوار است اون لحظه ای که روح از بدن جدا می شود در واقع این سواره داره از اصل میاد پایین چگونه میاد پایین اون لحظه آخر روح روح تسلیم الهی است، روح روح صبور در مسیر خداست رو روح کسب فضائل معنوی ارزنده است اگر این گونه باشد به همان کیفیت وارد عالم برزخ میشود در اون مرحله ای که اختضای لحظه پیاده شدنشه ولی اگر به گونه ای پیاده شده باشد که ناراضی با مثلا گناهکاری آلودگی و برخی از مثلا خصائص ناپسند انسانی اگر به این کیفیت باشد قطعا اقتضای اون رو مثل یک سواری که از عصب پیاده شده مجروع زخمی بدنش متعفنه به یک مکان معین یا بیمارستان میبرند عاقبت از آن کسانیست که با تقواه باشن تقوایی که در قرآن مطرح میشه یعنی چی؟ یعنی قدرت خیشتنداری یعنی غلبه امیال، هر عاقبتش خیر بود خیلی یا تو کوپه تا غذیه آشورا مرتب نماز میخوندن پیشانیشون پینه بسته بود ختم قرآنها داشتن ولی اون لحظه ای که بود از دنیا برن حتی اواخر عمر یا چیزی مونده به آخر عمر به گونه ای از راه به در رفتن چه چیزایی به در اونها را این نکته رو انایت کنید که باطل دنیاوی چه از درون من چه از بیرون مرا به گونه ای به سمت خود کشوند که قدرت ایستادن در مقابل آن که را نداشتم میشه عدم تقوا یعنی صبر نداشتن وقتی این استقامت و این قدرت مبارزه با آن خواسته ها در من نبود تقوا نبود تقوا نبود عاقبت به خیری نبود لذا می‌فرماید در آن جایی که به تو دادم تقوای دارایی رو رعایت کن در اون جایی که ابتلایت کردن تقوای در ابتلا را رعایت کن تقوای در ابتلا صبر است تقوای در دارایی اون هم با صبر است که اشاره کردم لذا امیرالمؤمنین در خطبه 176 همین مطلب رو با یک بیان دیگری یک کمی برای ما باز می‌کنن ان الجنت حبت بالمکار و ان ناره حفت به شهوات بحث دیشبم رو علم حیوانی حال حیوانی فعل حیوانی فهم انسانی حال انسانی فعل انسانی اینا رو در نظر بیاری تکمیلش رو از آیات روایات میخوام حالا عرض کنم ان الجنه حفت بالمکاره بهشت پوشیده شده است یعنی این لفافه هایی که دوره بهش را گرفته است به چه اموری؟ یک سلسل اموری که با خواسته های ما جور در نمیاد اکرا داریم یک کمی سختمونه که بخوایم بعضی چیزا رو بگذریم از بعضی چیزا چشم بپوشیم یا نسبت به بعضی امور عامل باشیم و ان ناره حفت به شهوات آتش جهنم هم شهوات گوناگونی دورش رو گرفته که باعث میشه به اقتضای اون شهوات به نار برن وعلمو نه ما من طاعت الله شیعون الا یعطی فی کرهن هیچ طاعتی از اطاعتهای الهی نیست هیچ امر و از فرامین پربردگار نیست مگر این که انسان تا قبل از اینکه که به اون پله بالای معرفت و عبودیت برسه اکراهی نسبت به انجامش داره و ما من معصیتن علیه آن الا یعتی فی شهوه هیچ معصیتی هم از معصیتهای پروردگار نیست مگر اینکه که باش شهوت انسان نوعی سازگاری داره یعنی مثلا فرض بفرمایید کسی که میخواد نمازش رو کنه که میشه معصیت این با شهوت تنبلی سازگاری داره کسی که میخواد نگاهه به نامحرم بکنه با شهوت جنسی سازگاری داره کسی که میخواد قیبت کنه دیگری رو بکوبه که منیت خودش رو به رخ بکشه این با شهوت خودخواهی سازگاری داره خب این یک است که معصیت با جنبه شهوانی نوعی سازگاری دارد تا اطهای عوامر الهی نوعی ناهمانگی و جنبه اکراه نسبت به اون بعد باز شهوانی وجود ما اما اگر بعد رحمانی بالا آمد هرچه بعد رحمانی قویتر شد در بعد رحمانی بدی نسبت به معصیت اکرا نسبت به گناه پیدا می شود لذت و خوشی نسبت به اطاعت پیدا می شود. اما از تله پایین شروع کنیم بیان بالا کسی که هنوز خودسازی نکرده در مسیر رشد و کمال معنوی خودش رو قرار نداده در این تله اول به فرموده مولا این شهوات و بعد حیوانیه است که ما را تحریک می کند ما در این مرحله صبر احتیاج داریم که جلوشو بگیریم تا وارد مرحله دوم بشیم در مرحله دوم و وقت اون صبری که سپنده رو دیشب گفتم مطرح میشه که به اون درجات بخواییم برسیم در ادامش خود مولا می فرماید سر رحم الله امرا خدا رحمت کند آن فردی را به تعبیر دیگری درود بر آن انسانی باد که نزع عن شهوتهی و قمع هوا نفسهی درود الهی بر آن کسی باد که ای رو بکنه از خودش نزع کند اینها رو دور بریزد و قمع هوا نفسهی و هوای نفسشو قل و غمع کنه ان حاضه نفس عبد شيئا منزعا وانها لا تزال تنزع الى معصيه في هوا امير المؤمنين داره معرفی میکنه خوشا به حال اون کسی که وقتی داره به خودش میپردازه این جنبه شهوات رو یک زمان ببینید علت هست ما هی مبارزه با معلول می کنیم مثلا سرم درد میکنه علت سردرد طرز بفرمایید ناراحتی معده است معلول این سردرده علت که سردرد نیست من فقط قرص مسکنی می که این سردرد منو یه مقدار آرامش بده این مبارزه با معلوله از نظر یک انسان حاضر میگه اون علتشون نزع کن بکن بنداز دور اگه ناراحتی معده است و دو مداوا کن سردرد خودش خوب بشه ما وقتی شهوات در وجودمان ریشه میدوانه و ما را وادار به حرکات شهوانی میکند در این مرحله یک میتونیم شهوت رو بکنیم دور بریزیم دو صبری که در مرحله‌ای که شهوت وجود داره امیر المؤمنین این رو می‌فرمایند. فرماین فا این نحازن نفس ابعد و شیعن منزن. خیلی دوره و مشکله که بخواین شهوات به کلی از این نفس دشنید دور بریزید این خیلی دعای بالایی میخواد تا دم مرگ این هوای نفس از من و شما دست بر نمیدارد نفس اجزره کی که او مرده است از غم بیالتی افسرده است حالا که این گونه است و اِنَّا لَا تزال تنزه و اِلَا فی هوا همینجور پشت سر هم این جنبه شعبانی وجود شما میخواد شما رو به طرف معصیت بکشونه ببره پس از ریشه که نمیتونی بکنی برای اینکه شما که نمیتونی انسان رو از نظر انسان بودن کششهای حیوانیشو بگیری انسانه اما چی اینجا میتونه در مقابلش بیشته صبره پس کار کن برای صبر شدن. پس تمرین کن برای صبور بودن از فله های پایین شروع کن بیا تا فله بالا یکی از این عواملی که باعث می شود صبر در برابر شهوات زیاد شود توجه به حادم لذات و حادم شهوات است اینه دقت بفرمایید و لذا ابی عبدالله بلا فاصله بعد از صبرن بن الکرام کلمه موتو مطرح کردن و من موت الاغن حالا اون اموری که خیلی غوی و عالی میتواند این لذات شعبانی را در نظر ما سوس کند و ما را نسبت به او از نظر قدرت روحی بالا ببره یاد مرگه زبان شرعیش رو بگم تحلیل عقلی رو ارز کنم خطبه 99 امیر المؤمنین علیه السلام نهجل البلاغه الا فضل کرو حادم اللذات الا بیدار باشید حباساتون رو جمع کنید فضل کرو یاد کنید متذکر بشید هی بیادتون بندازید حادم اللذات اون چیزایی که لذات را یعنی لذات شعبانی رو منهدم میکنه از بین میبره و مانع شهوات و تیرکننده و نابود نابودکننده شهوات شب... و قاتل امنیات و آرزوهای طول دراز رو قطع میکنه میبره اندل مساورت للاعمال القبیحه وقتی که میخوای نسبت به اعمال قبیح نسبت به اعمال ناپسند الان گرایش پیدا کنی الا فذکرو حادم اللذات این حادم اللذات رو ذکر کنید چیه؟ حضرت میگه یاد مرگ کنید حالا چرا؟ تحلیلش رو بد عرض میکنم کلمات قصار نهجل بلاغه چهار سد سی و انقطاع اللذات و بغاعت طبعات چقدر زیبا قذ کرو انقطاع اللذات دیشب ببینید یه اشاره کردم هر فعلی از حالی برمیخیزد هر حالی از علمی برمیخیزد ما الان میخوایم دست به یک عملی بزنیم فرهنگ ابی عبداللهی و آشورایی و امام حسینی و امیرالمؤمنینی و قرآنی و فرهنگ الهی چی میخواد عزیز من قبل از عمل فکر کن قبل از کار بیندیش قبل از دست و هر عملی حتی قبل از عرض زدن فکر کن بعد عرض بزن حرف نزن بعد فکر کن به همین جهت معرفت معرفت معرفت بالا بردن تفکر اندیشه که حالا چند تا روایت در همین رابطه معرفت در این هر قارم برسم براتون بخونم تأکید میکنم آقا فکر کنید الان همین لذتی را که میخواید بر خودتون کسب کنید این مولا امیر داره درس میده همی لذتی که الان میخوایی به دست بیاری قضل کرو انقصال لذات آقا جان بیادت بیار تمام میشه و بقاعت طبعات اما آثار باقی مندشی باقی است. چرا عاقل کند قاری که بازارت پشیمانی شما رو به جان علی عبدالله در این شب آشورا یک کمی فکر کنید اگر عمر صدر آقلان عمل میکرد این گونه خسرت دنیا ول آخره میشد امام حسین امشب شب آشورا نزدیک دو ساعت با عمر صدر عرض زده برای اتمام حجر آخه وای دو ساعت حرف امام معصوم مثل یعنی دلات و گوشی بنده خدایی نره ای چه کرده؟ حضرت از هر دری وارد شد نکن خود تو بیچاره نکن چه داری میکنی در کدوم راه داری میری آخری اسبانی شد به ملکرهای ای رو نمیتونم بگذارم حضرت فرمود سرتو میبرن تو کوچه‌ی کوفه بچه بچه‌ها با چوبی که بازی میکنن سرت اینور بر اونور پرتاب میکنن به ملک ری هم نخواهی رسید اینو برای آخرین بار بهت میگم هم خسارت دنیایی هم آخرت پا شد از خیمه اومد بیرون خیمه ای که امشب خلوت کرده بودن دو با هم صحبت کنن عمر سعدم اونقدر عصبانی شد به جای اینکه به فکر رود رو رو برگشت گفت بگذار سر مرا بچه‌ها با او بازی کنن این چقدر این چقدر هماغته این چقدر شهوته این چقدر عدم صبر در مقابل تمایلات سرکش درونی لذا امیر المؤمنین توجه کنید، فکر کنید، دقت کنید جوان عزیز برادر و خواهر در شب عاشورا اجازه بدیدیم مطالب رو بگم اگر چه همه سوگواریم و مقدمه عزاداری این الفبا بود به عزاداری بپردازیم اما این در رو فرا بگیریم هر عملی که میخوای انجام بدی هر کاری که میخوای بکنی تو رو به جان امام حسین در این شب آشورا بیا عهد ببند نیم ساعت فکر کن این هر کجاش بده شما رو به شرف و وجدان و علم و عقلتون به هر جای عالم برید ای حرف بنده کجاش عیب داره کدوم منطق اینو رد میکنه میگم فکر کن یه مقدار بی اندیش. بعد از اندیشه بیا عزیز من با چهار نفر در میان بگذار از تو با تجربه تر وجود دارن از تو مسنتر وجود دارن اگه اشکال داری خیال نکن این اشکالاتو دیگران نفهمیدن اگر مسائلی به ذهن تو زده خیال نکن به ذهن دیگران نزده برو با اونام در میان بگذار شما راجب این مطلب چگونه فکر میکنید بعد بندی کن <تصفيق> کار به اونجا نرسد که برای جوونترا گفتم یه جوانی غرغ مادیات مادرش به من زنگ زد اگه سرم روحیه خوبی داشت زمینش خوب بود حالا غرق مادیات به گونه‌ای شده که من براش متأثرم یه کمی باش حرف بزن بهش زنگ زدم می‌خوام ببینمت اومد منزل ما قضیه مال دادوا 10 سال قبل اومد منزل ما نشست خیلی هم خوش استعداد بود سابقه‌ش هم داشتم ولی دیگه غرق مادیات شده بود گفتم عزیزم بنده رو می‌شناسی من بی‌منطق چیز رو قبول نمی‌کنم نمی‌خوام کسی از من قبول کنه تو رو کمی فکر کن اگه حرف من غلطه به من جواب بده یک کمی فکر کن ببین اینجوری زندگی میکنی خوبه یا بده اگه خوبه منو قانه کن اگه بده ترک کن جوابی که شنیدم مقزم سود کشید این بود من وقت فکر کردن ندارم و چی بگم به این انسان؟ انسانی که انقدر خودشو بیچاره کنه انسانی که خودشو به این مرحله برسانه هست که فرصتی برای اندیشیدن ندارد وقتی برای بحث های انسانی اخلاقی دید چه خبر دنیا و مادیات تازه اینم بدانید از اون دید معنویشم بگم اونایی که خودشونو غرقه فقط مادیات میکنن سنت الهی اینه خیر وافی و کافی از مادیات هم نمیبرن جوششون به شکل دیگری پیش میاد که گرفتاریه اون کفران نعمتی که باید قسمتی از عمر را برای معنویت بگذارند تا علی ب ذکر الله تتمئن القلوب پیدا کنند پیدا نمیکنن. امروز ممالک مغرب زمین رو در نظر بگیرید چنان نظام انسانی پاشیده شده چنان عواطف انسانی مرده مجبور خلع عاطفیش را با سگ که در بین حیوانات و پادار بیاره تو خونه به این سگ دل ببنده تا خلق رابطه ی انسانیش پر بشه این درد نیست در جامعه بشریت این که نیست که انسان داره میخوره حالا ما پس به این نقطه احضرت میفرماد به این دارید میکنید لذا اگر اندیشه شما به شما میفهمونه حالا راجب این اندیشه اجازه بدید من یه روایتی براتون از السلام در رابطه با اندیشه نسبت به مرگ بخوانم بهار جلد شش صفحه صدو هفت از جامع الاخبار نقل میکنه که جامع الاخبار یکی از کتب بسیار ارزنده ما شیعیان است در این رابطه میفرماید غالب نبی پیغمبر فرمودند افضل افضل زهده فد دنیا خود زهد چه ارزش داره افضل زهد در دنیا ذکر الموت یاد مرگه و افضل زلول عباده الموت افضل عبادت یاد مرگه و افضل تفکر ذکر الموت افضل تفکر ذکر موته روایت از پیغمبر چرا افضل زوحت افضل عبادت افضل تفکر یاد مرگ چون یاد مرگ با تفکر در خصوص مرگ که از قرآن توضیح بدم تفکر در مورد مرگ و شناخت مرگ به چه صورت است که حدیثم اون رو مشخص میکنه امام حسینم در روز آشورا به رخ میکشه و این مسئله رو مطرح میکنه این تحلیل مختصر رو گوش کنید آیا و روایت روشنتر مطرح بشه به جهت اینکه عدم صبر عدم صبر عدم استقامت عدم توان در مقابل تمایلات ایستادن مگر غیر در این است به خاطر لذت بردن بعد چهاوانی است از اینه به خاطر لذت بردن بعد شهوانی این باعث میشه که قدرت ایستادگی نیست وقتی قدرت اصطادگی نبود غرق در شهوات میشه غرق در شهواتم شد سر میخوره میره جلو میره جلو کار به جایی میده که حاضر میشه امام حسینم بکشه که گفتم چا جلسه صبح بود گفتم گفت من هفت درهم به من دادن که بیام کربلا امام حسین رو بکشم برای هفت درهم ولی بعد از این که از کربلا برگشته بود تو کوفه میزد سو سرش میگو من ده درهم خرج کردم رفتم کربلا و برگشتم ولی هفت درهم گرفتم آقا اگر این مسخره است به خدا قسم من بدبخت باید گاهی به آل خودم گریه کنم که خیلی از کارهای روزمره من اینجوریه اگر هفت در هم گرفته ده در هم خرچ کرده رفته کربلا سرمایی خدا به من شما داده عقل، غلب، نیروی عمر انسانی که میتواند شما را هم جوار فرشتگان کند و اون بحثی که صبح داریم شما را در غربه بهد هم نشینان اونهایی قرار بده که حجوب نور رو هم پاره کردن و بالاتر رفتن من اینا رو بدم برای چی؟ برای یک لذت جنسی این درد نیست؟ خب او در کربلا برای عفتر همه کشت تو برای یه لذت جنسی شرافتت رو میدی؟ انسانیت رو میدی برای یک رشوه اون اصالت انسانی که میدی برای یک دیگران خوششون نیان بدشون نیاد حزب و دار و دست و گروه و بقیه برای من باقی باشه میز و پستم و موقعیتم حفظ باشه حقیقت رو مخفی می‌کنی پس صبر یعنی در های گوناگون زندگی قدرت ایستادن در مقابل اینها این یک واقعیت که اهل معنا اهل سیر و سلوک در بزنگاه های منازل بالای سیر الله توی امتحاناتی واقع میشن میلرزن اونجا میگن خدایا یا اون امتحاناتو تو سیر و سلوک برای ما شروع کردی قدرت بده بتونیم واسیم ما خیال میکنیم اگر آشورا بودیم حسینی خواهیم بود چه دلیلی دارد منی که لذت جنسی منو میبرد لذت پول منو میبره کربلا بودم یزیدی نباشم. مگه اونایی که در کربلا یزیدی شدن برای چی بود؟ 7 و هم ده و مهراب مسجدشون بزرگتر باشد و مقامشون از دیگران بالاتر باشد و ملک ری رو به اونها بدهند و, و دنیا و دنیا و دنیا و دنیا غیر از این مسئله نبود به هر نسبتی که دنیایی هستیم در طول هفته حاضر نیستیم دو ساعت برای دینمون بگذاریم دست زن بچمون بگیریم بگریم تو مجالس دینی بریم 4 ساعت بشینیم مصالحه مذهبی بکنیم اون وقتا یه شب عاشورا و یه شب 21 رمضان و یه ایام خاص مذهبی چه خبره چون صبر در مقابل ارزشهای معنوی ایستادن برای تعالی و صبر در مقابل شهبات جلوشو گرفتن نداریم لذا یاد به ما میگه میری از این دنیا تو مارا همینجا نیستی تو یه مرحله بالاتری اون مرحله رو فکرشو بکن این فکر علم ایجاد میکند این علم حال ایجاد می کند. این حال فعل ایجاد میکنه. سوره زمر آیه چهل و دو خوب دقت بفرمایید اون وقت تفسیر و توضیح و رو از امام علیه السلام برای شما بخونم الله خو یتوثل انفسه هینم موتها ولتی لم تموت فی منامه ها خیلی عجیب روشنگر و توجه بخش نسبت به این عمره یا یتوثل انفس هین موتها خداوند این کلمه توثیر و خدای بر به درجات مرحومه علامه تبا تبایی رزوان الله تعالی علیه یفضاید که در تفصیل المیزان راجب توفی و این بحثای توفای نفس قوغا کرده قوغا کرده معلم. کلمه توفی از وفاست وفای چیزی رو کامل حقش رو ادا کردن الان اگر این رو بنده امانت بدم به شما میگم امانت شرعی زمانی شما وفای به این امانت داری میکنید که اینو به همین حالت بدون خراب شدن و کما به من تحویل بدید حتی اگر یه ذره از این وریده شد به من دادید توفی در امانت نکرده ای مرگ را قرآن میگه توفی انفس توفی نفس یعنی اونی که خدا داده روح نفس موقع مرگ میاد تعمیل میگیره تمام هیچی از این نفس تو شما نمیداره اینو میگیره یعنی مرگ جدای نفس از بدنه الله یتوفل انفسنا موته در موقع مرگ میاد اینو توفی میکنه یعنی کامل میگیره میگه دادیم حالا مال ماست ما بگیریم این از شما تحویل میگیریم ولتی لم تموت و اونایی که نمردنم میگیره ولی کی فی منامها وقتی که تو خوابم تو خوابم یه جور نفس از شما میگیره تو مرگم نفسو میگیره با این فرق که در خواب در می‌گردونه آیه میگه من نمیگم ما مخاط بحث تفسیری مفصلی داره این بحث که در خواب تعلقن مایی باقی در مرگ تعلقن ما قطع میشه که این تعلقن ما چیه من امشب نمیتونم بحث کنم این به معنی الله یتوفى الانفس حین موتها و لم تموت فی منامها فیمسکلتی قضا علیها الموت اونی که مرگ بر او مقدر شده نفسش خدا گرفت نگه میداره و يرسل الاخرى الى اجل مسما اما اون دسته دیگر که خوابن تا موقعی که عجلشون برسه خدا اینو بر میگردونه نفسو بهشون میده تا زمانی که مرگشون میخواد برسه ان في ذلکه لایات لقوم يتفکرون این تفکرون شده از بیان امام براتون توضیح میدم میگه در این امر که نفس از شما میگیره در خواب دوباره برمیگردونه تا زمانی که مرگ برسد وقتی گرفت دیگه برنمیگردونه نشانی ها اگه اهل فکر باشید و اگر بخواید روش بیاندیشید بحثها داره این مطلب در رابطه با توجه به مرگ صفحه صد و و شش جلد ششم بهار باز از معانی الاخبار از امام حادی علیه و السلام این روایت رو نقل می کند میگه گفتم به امام علیه السلام ما بال ها اولا المسلمین یکرهون رهون الموت گفتم چی شده که بعضی از این مردم از مرگ اکراه دارند و میترسن این حدیث رو با یه حدیث دیگه دو تایی که این رو توضیح بده سری میخونم رد میشم چی شده که بعضیا میترسن قال فرمود لعنه هم جهلوه و کرهوه اینا جاهلان و اکراه دارن یعنی اگر کسی بفهمد از مرگ اکراه نبوده شده باشه چرا ادامه شو ببینید ولو عرفوها و کانو من اولیاء الله ولو عرفوها اگه معرفت داشته باشه نسبت به این مطلب و کانو من اولیاء الله عزّ و یه اشاره بکنم اون اشاره ای در سوره جم ام اشاره میکنه يا اولیاء الله زینه هادو انذام توم آنکم اولیاء الله فتمان نبود ان کنتوم صادرا راست میگی و تمنوا المل آرزو کنید مرگ را حالا اون بحث قرآنی رو در وجود داشته باشید لو عرفوه و كانوا من اولیاء الله عز وجل لا احبوه دوست می‌دارند و لعلموا ان الاخره خيرا لهم من دنیا خیر لهم من دنیا میدونن که اونجا خیلی بهتر از اینجاست اونجا خیلی بهتر از اینجاش شو اول دقت بفرمایید صبر برای جلو شهوات را گرفتن حالا از این دیده فعلا عامهصر در برابر شهوات تا به نجایی که میل به بقای در این دنیا همه دوست دارم زنده باشند دیگه باقی باشند صبر نسبت به این میل. نه من حاضرم حتی بمیرم برای کسی که معرفت پیدا کرده ول آخرت و خیرون و افغا ول آخرت و خیرون و بالاتره. جوان بیا رو این فکر کن این درس امام حسین رو به عنوان درس ایام و آشورا روش بیاندیش، آخرت حق یا نه. ارزش‌های اخروی بالاتر یا نه ورود به اون مراحل ارزنده بالای کمال انسانی در جهان دیگر ارزنده است یا نه اگر هست با توجه به اون ارزش عدم صبر که لذت شهبانی دنیا رو درست می‌کنه با چه معیاری برای یک عاقل قابل پذیرشه لذا فرمود افضل العباده ذکر الموت یعنی وقتی بیاد مرگ میفته توجه بن ارزش ها بادارش میکنه که عبادت کنه ریشه رو درست میکنه افضل الزهود ذکر الموت افضل التفکر ذکر المود. یعنی تموم میشه باید بریم حالا که باید بریم برای اون مرحله اصلی خودمون داریم چه کار میکنیم لذا حضرت فرمودن ثم حضرت سپاس اضافه کردن ما بالا المجنون و مجنون یمتن آمینه دوا علم نت بدنه و نافیل ال المعان مثال میزنم حضرت کافراد متقاضی بشن اما مهدی علیه السلام فرمودن باز سال کننده چرا بچه های کم سن سال و افراد مجنون از دوا خوردنی که برای شفای بدنشون مفید است؟ و نافی للعلم رنجها رو کنار میزنه چرا سرباز میزنن؟ چرا حاضر نیستن این دارو رو بخورن؟ غاله خود امام فرمودن هم به نفع دوا به بفرمایید؟ لجهلهم به نفع دوا به خاطر اینکه نفع دوا دارو را جاهلا نمیدونم اگه میدونستن که میدویدن دنبالش، گیرم نمیاد میرن تو هلاله تو صف واسن تا گیرشون بیاد که بخوان تهیه کنم برای اینکه میدونه لازمه، میدونه سلامتیش وابسته به اینه. اگر بفهمد یاد مرگ، یاد های بالاتر رو براش ایجاد میکنه. وقتی یاد های بالاتر رو براش مطرح کرد، سختی جلوگیری از تمایلات جنسی ببخشید رک میگم و اینا احساس وظیفه میکنم که بگم سختی جلوگیری از تمایلات جنسی سختی جلوگیری از رشوه گرفتن سختی خودداری از مقام طلبی سختی خودداری از امور خودبروخشیدن و بر دیگران غلبه کردن سهل می شود چرا مثل سختی خوردن داروی تلخ که میفهمد چه آثاری براش داره پس این فهم باید ایجاد کنیم لذا امام حسین علیه السلام هم می فرماید. فمل موت بعد معرفی میکنه اونها می من بفهمم فهمم فمل موت تره. مرگ پله با این پل تعبو رو بکم شما رو داره عبور میده از کجا؟ از عالمی که بدی، سختی، رشتي، ظلم، بي‌وفايي توش هست الالجنان الواسعه و نعیم دائمه به سوی آن جنت وسيع نعیم دائمی همیشگی، اما برای ورود به آن مرحله استقامت در این مرحله لازمه و الذي بعث محمدا بالحق با اون خدایی که پیامبر به حق را برای نبوت به حق مبعوز کرد این من استعده للموت حق الاستعداد و هوا انفعو لهو من و دوال حاضل المتعالج. دیم بیان امام حادی دقت کنید میگه با اون خدایی که پیغمبر اسلام رو به پیغمبری مبعوز کرد کسی که مرگ رو بشناسه بیاد مرگ باشه آمادگی برای مرگ رو در خودش ایجاد کنه تو پرانتز یه جمله بگم خیلی کوتاه و سه جمله تو پرانتز بگم ببینید اگر انسان باورش بشه من اینو گفتم برای بعضی دوستا برای خود من پیش اومده تو دانشگاه بودیم قروب قضیه مال مثلا شاید 17 سال قبله به سن دیج ده سال قبل ما هم سن ما از دوستان ما بعد از اینکه جلسه تموم شد اومدیم بیاین بریم یکی از این دوستان یه بسته پول در آوردهش که ناس داد به یه دوست ما گفت شما فردا پلان دانشکده میری گه بله گفت فلانی رو تو دانشکده دیدیم بسته پولو بهش بده گفت چرخ خودش تو کیفش رو رفت صبح زود تلفن ما زنگ زد آقا پلانی دیشب سکته کرد همینی که پولو بهش بودن تو کیپش گذشته بود رفقا جمع شدیم منزلش شون از دنیا رفته مقدمات غسل و کفن و دفن و فراهم کنیم گفتیم ایشون وسیتنامهش گفت نمیدونم میز کاری داشت کشو میزش باشه ماها رفتیم سر کشو میزش میز شو میزو کشیدم دیدم که این بسته پولی که دیشبش داده بود یه کاغذ دوریش پیچیده روش نوشته امانت فلانیس به من داده است باید به فلانی برسد یعنی باور داره شاید همین مشب من مردم این پول تو کیف منمون فردا ورسه که نمیدونه مالکی خیال کنه مال منه حق و ناس به گردن من باشه کسی اینجوری مرگ رو در نظر بیاره امام که اینجا قسم میخوره میگه به خدایی که پیغمبر اسلام رو به حقیقت به نبوت برنگیخ کسی که استعداد مرگ را اینجوری برای خودش داشته باشه فهوه انفعو لهو من حاضه الدوال حاضه المتعالج به خدا قسم فایده توجه به مرگ از اون دارویی که برای اون بیمار نافعه نافع نافعتره چه نفعی داره یعنی جوان تو رو از گناه باز می داره تو رو از این که از مام زمان جداوشی باز می داره تو رو از این که از خدا جداوشی باز می داره اگر بذارید یه کمی روش بگم اب نداره اگر یه لذت جنسی تو رو میکشونه بری با یه عده بشینی بفهمی لذت با خدا نشستن چقدره به فهمی لذت تو مجل... مجالس امام حسین اومدن چقدره به خدا آغازم به خدا آغازم شب آشوراس راست میگم وقتی تابستون جلسات ما تعطیل میشه دو ماه دو ماه نیم من با همه خستگیم با همه ناراحتی جسمیم، هم با همه تهدیدهایی که اعتبا من دارن که نباید و بخرم تهدیدشون کاری کرد که امسال بعد آشورا جلسه که ارسال اسپان میرفتم تعطیل بشه. با همه حرفهایی که من توان جسمیم، از نظر فشاری که روی هنجرمو برخی مسائل هست نمیتونم حرف بزنم به خدا قسم وقتی یه مدت از ساعتیه حسینیه میگذره گریم میگیره خدایا این توفیق از ما نگیر کی میشه جلسه شروع بشه بیایم دور دوستان یه چند تا آیه بخونیم چند تا حدیث بخونیم چار کلمه از معصومین بگیم یه مقداری تاریکی ها از دلمون کنار بره یه نورانیتی به برکت اون بزرگواران در فضای قلب و جان ما ایجاد بشه شاید همین ها باعث به شما رو یه مقداری تو اون مسیر ببره لذتی که با خدا نشستن داره با اولیای خدا نشستن داره تو دل شب بشین با امام حسین عشق کن جوان بشین با امام زمان حال کن امام زمانی که اونقدر لطف داره اونقدر عنایت داره وقتی صلاح بدونه میاد دست نوازشم به سرت میکشه اما صلاح ندونه میگه یه مقداری ببینم سوز و چیه در مقابل این لذت ها این ارزش ها لذت جنسی لذت دوست دختر و پسر لذت ماهواره یه مقدار افاق دید و ببرید بالاتر جانم به فدای اصحاب کربلا شما چی وحمیده بودید اون میگفت تو رو خدا بذار اول من برم کشته بشم مرگو چگونه دیده بود مورد به یک عالمه عالی ال ارزنده چکامی اون میگفت تو رو خدا میداری اول من برم این یکی میگفت تو بذار اول من برم همین جور داشتن سبقت میگرفتن نسبت به ارزش ها این برمیگرده به این بینش ما نسبت به حیات مما. دنیا اخرت دنیا آخرت بابا از دنیا دوستی و فقط عالم دنیا دیدن بیایم بیرون گاهی در همین عالم به ما میدن حدیثی روز تو جلسه صبح خوندم پیغمبر فرمود وقتی از معراج برگشت به جناب سلمان فارسی فرمود سلمان تو در کرسی در عرش در عالم حجب نوری مطرح بودی چرا؟ چون مستاغ بارده یؤمنون بالقیب بودی یومنون بالقیب یعنی چی آقا؟ یومنون بلغیف یعنی همین شکم شهوت و ظاهر یه چیزهای اونورتره یه کمی واسی پردن براتون کنار میزنن بهتون نشون میدن ولی نه این که از اول به این انگیزه بیایی جلو که بازمنیت مطرح باشه اون بینش های والای نسبت به دنیا و ممات رو توجه بکنید در جلد هفتم بهار صفحه چل دو کم, کم جنبندی کنم نزدیک بشم شب آشوراس بریم تو حال شب آشورا من نتیجه گیری کنم بحث رو در جلد هفتم بهار سفه چهل دو حدیث از امام باغر علیه السلام میگه لغمان پسرشو اینجوری می کرد کانه فیما و عذا بهی لغمان علیه السلام ابنهو انقال یابونی پسرم انتکو فی شکن من الموت چکی داری نسبت به من فرقا نفس کن نام خواب از سرت بزن بیرون اگه شک داری مرگ میاد میتونی خواب جلوشو بگیری یه شب نمیخوابی دو شب نمیخوابی کار به جایی میرسه هرچی میخوای نخوابی نمیشه خوابت میبره هست یا نه یعنی همینطوری که خواب در خیار تو میاد سراغت مرگم در خیار تو نیست یه دفعه میاد و میگیرده ولن تستتی از حاله تو قدرت نداری جلوشو بگیری و انکنتا فی شک من البس شک داری دوباره از مرگ بر زنده میشی فرفع نفس کل انتباه بیدار شدن و جلوشو بگیر شما وقتی به اندازه لازم خوابت و رفتی بیدار میشی میخوایم به خوابی دیگه نمیشه چون به اندازه لازم بدن خوابیده میگی دوباره از مرگ سر بر نمیدارم قر جلو این بیداری تو اگه میتونی بگیری بگیر وقتی خوابیدی بگو نمیخوام دیگه بخوابم جلو بیداری تو بگیر ولن تفتتی از ظالم انکه اذا فکرت سی هاجا را اگه راجی به همین خواب و بیداری فکر کردی حرفای لقمانیه که امام باقر علیه السلام هم داره به منو شما یاد میده فإذا فکرت روی این فکر کردی علمت انا نفسکا به ید غیرک متوجه میشی همونطوری که خواب و بیداری دست خودت نیست دست کسی دیگه است نفست هم دست تو نیست دست کسی دیگه است اون موقعی که میخواد نفستو بد میده تو نمیخواستی به دنیا بیایی اگه دست تو بود دادن تو را آوردن نمیخوای از دنیا بریم میگیرن میبرن اونم دست خودت نیست. از همینجا علم ته انه نفسکه دید غیرک و ان نام به منزلت الموت و انما لیقزه بعد النام به منزلت البعث بعد الموت این خواب مثل همون مرگه بایی بیداری مثلا اون زنده شدن بعد از بیدار... لذا اومد به امام عرض کرد آقا بعضیا که مردن چشمشون بازه بعضیا که مردن چشمش بسته برای چیه حضرت فرمود اونی که چشمش بازه میخواست ببنده ملک الموت حتی مهلت بستن نداد با چشم باز مرد اونی که چشمش بسته بسته بود تا خواست باز کنه مهلت پیدا نکرد صبرن بنل کرام فمل موت الاغن تره پس مرگ در نظر بیاریم رو با توجه به یاد مرگ انسان سبر میشه چرا؟ یک این مقدار جمبندی بکنم انشاءالله فرد فردا شب بحث جمع کنیم که بریم سراغ بحث های شبهای جمعه امیدوارم یبنال الحسن شما را به جان مادرتون زهرا شما را به امشب کربلای یابی عبدالله شما را به ناله امشب و فردا شب زینب کبران شما رو به اون مناجات و زمزمه های امشب اصحاب ابی عبدالله در کربلا یه نظر انایتی یه گوشه چشمی به این جمع ما به زنا به مردان برای روا شدن هوایج مشروعشون برای نورانی شدن دلشون برای صبور و ثابت قدمشون برای توجه به معنویت هاشون، برای تصمیم گیری در این که از این محرم به بعد یه مقداری از عمرتون زندگیتون وقتتون پولتون آوروتون رو برای دینتون بگذاری این مشغله های دنیاوی اینقدر شما رو نگیره یبنال که به ای شما هیچ است و هیچ حالا این جنبندی مختصر رو دقت کنید وقتی انسان بیاد مرگ میفته یک یومه طبلس سرائه که بحثش بمونه بعد بحث قرآنیه است که همه چیز برملا میشه دو در سوره یاسین شما میخونید در روزی است که مجرمین از غیر مجرمین چی میشن جدا میشن ممتاز میشن اگر همین رو در نظر بیاریم اونجایی که دارن غربال میکنن منو میگن تشفیه کنم خیلی پیش با افتاده رو از درختها کندن آوردن میخوان بندی کنن میوه کرمیه میوه زخمیه میوه کاله میوه کوچلوه میگه این دور بریزی بدید توی اغل جلو گاوا بخورن اینه نمیشه تو بازار داد میبه های خوب و جدا میکنن بستبندی میکنن میدن بازار لحظه بعد از مرگ وقتی دارن ماهار رو جدا میکنن یه اده رو میگن اینا رو ببرید تو مجلس مام حسین اینا رو ببرید تو مجلس امیر المؤمنین اینا رو ببرید پیش اولیای دین خلیفی عبادی ولی وای بر من که در اون لحظه بگن اینو ببرید تو سپاه یزید و عمر سعد و تو سپاه فرقون ها و این کالی است که در این دنیا نرسید چون کاله کال کالو باید ببرن با کالا و خاما بنشونن این توجه به مرگ بیاد موقع گناه نمی لرزیم لرزید این موقع گناه چی میشه؟ استقامت لذا هر روز آشورا لرزید چرا لرزید؟ اومدن بهش گفتن جناب هر تو آدم بسیار قوی بودی تو جنگجو و شجا بودی گفت این لرزشم لرزش دیگریه این لرزش لرزش ترس از جنگ و جان دادن و صحنه روز کربلا و عاشورا خودم خودمو بین بهشت و جهنم دارم میبینم و می لرزم که نکنه کارم به گونه ای باشه که منو جهنمی بکنم لذا این صبری که پیدا شد مثل امشب امام حسین علیه السلام ای یارانش رو جمع کرد فرمود امشب طبق نقل ظاهرا حدود هزار نفر با امام حسین بودن تا امشب که هزار نفر تو تاریخ داره حضرت جمع کردند فرمودن قاطع بگم فردا همه ما کشته میشه همه ما شهید میشه. قبلش قبلشم گفته بود بعضی یا هنوز تصور میکردن که شاید قضیه اینجوری نباشه الاخره دری به تخته بخوره و یه عضایی دور بشه بعضی هایی از ضا های دور و نزبی به کمک ما مسن بیاد و حضرت هم پیررو بشه و مام یه چیزایی گیرمون بیاد ولی اون شب دیگه مسللم شد که نه عصر تاسووا اومده حمله رو میخواسته آغاز کنه و عبدالله یه شب و مهلت خواسته امشب به ما مهلت بدید فرداست که دیگه باید هممون شهید بشیم بعد اومد گفت هرکی میخواد بره بره. اونایی که صبر شتن رفتن از یه هزار نفر. راستم ولی حالا شما رو به خدا به من نگید به خودتون یه یک کمی فکر کنید شما رو به خدا اگه ما جزون هزار نفر بودیم رفته بودیم با توجه به عالم معنا عالم برزخ عالم بعد از مرگ، عالم توجه به عالم موج، تا به امروز در عالم برزخ تو سرمون میزدیم یا نه ایداد ای داد خب مگه چی بود روز آشورا شهادت دیگه آخرش مرگ دیگه خب اونا رفتن جانم دادن به واقع عالم که رسیدن این صبر به کجا رسون چه کرد اصحاب ابی عبدالله رو لذا اونایی که قدرت نداشتن رفتن ولی اونایی که این تمرین صبر رو کرده بودن برا در تمرین کن تمرین رو یک نتیجگیری اخلاقی ما بکنم برم سراغ رو دیم شن. یک تو واجبات تمرین کن سستی نکنی در او. به هر نسبتی که در واجبات سستی بکنی صبر در مرحله اول انجام واجبات کم میشه کاسته میشه دو به مستحبات عادت کن یه مقدار قرآن بخوان نماز مستحبی بخوان برخی آداب مستحبات مثل گاهی زیارت آشورایی زیارت جامعهی دعای کمیلی دعای احدی دعای فرجی چهارتا ذکر سلواتی تا ذکر لا اله الا ای ای اینا صبر میخواد تمرین کن تو مستحبات یه مقداری صبرت بیاد بالاتر سه صبر در برابر گناهان تمرین بکن از همین گناهان کوچولو کوچولو که سر راهت داره قرار میگیره قدرت ایستادگی رو در خودت ایجاد کن تا بتونی با این عوامل مبارزه کنی بیای بالا بیای بالا اونایی که شب آشورا رفتن تمرین صبر نداشتند. اونایی که روز آشورا مندن تمرین صبر داشتن صبر در اون مرحله که یکی بگه حسین جان هزار بار منو بکشن و زنده کنن به خدا قسم دست از تو بر نمیدارم دیگری بگه هفتاد بار منو بکشن و زنده کنن دست از تو بر نمیدارم یکی دست آقا رو ببوسه یکی وای آقا رو ببوسه خلاصه رفتن خالصا موندن حالا که خالصا موندن حضرت فرمود میتونید برید یه مقدار یه سؤالی هم این بود که اگر آب در خیمه ها نبود چطور میگن شب آشورا بعضیا غص کردن نه توجه داشته باشید ببینید عزیزان من این سوالات به ذهنتون میاد ترخ کنید همینجوری پیش خودتون نگید پس هر ترد شده اونایی هم که مطالعه کردن اینا رو خوندن و دنبالش رفتن دیدن توجه دارند چیه؟ شب آشورا یک درگیری در نصف شب شروع شد مختصر آبی به خیمه ها رسید از صبح هفتم آب غد شد نشد آب بیارن تا شب آشورا شب عاشورا مختر... مختصر آبی آوردن غسلی همی که میگن انجام دادن نه مثل کیفیتی که هم میگیم آب بون فراوانی مصرف کرده باشن نه همونطوری که نماز خوف داریم با یه آداب خاصیه اون شب رو یک سری وضائف رو انجام دادن ولی دو سه تیکه از شب آشورا رو بگم روزه فردا رو بخونم مقتل رو میدارم مثل از تار صبح انشاءالله تو جلسه صبح یاریم کنم بخونم انشاءالله دو سه نکته در خور اهمیت یک خلوتی که زینب با حسین امشب داره وقتی که زینب سلام الله ها متوجه شد که دیگه فردا آخرین لحظات دیدار امام حسین امشب آخرین شب است و دیگه قطعیه زینب کوه صبر از اون دیدی که ولی الله و الله باید این همه صحنه ها براش پیش بیاد از جد شنیده از پدر شنیده از مادر شنیده از دیگران شنیده این فشارها الان داره امشب یه بیتابی خاصی زینب میکنه در عالم معنای خودش امام حسین با زینب خلوت کرد اسرار رو گفت رموز رو گفت وظائف فردا رو معین کرد لحظاتی با هم دیگه خلوت کردن بعد زینب از حسین جدا شد حضرت فرمود خواهرم برو اگه میشه استراحت کن فردا روز سختی رو در پیش داریم زینب رفت تو خیمش دید نمیتونه به خوابه مگه شب آشورا خواب به کشم زینب میاد دلش برای حسین تنگ شد اومد تو خیمه حسین دید حسین تو خیمه نیست رفت تو خیمه اول فض حسین اینجاست نه حسین تو خیمه اول نیست و تو خیمه علی اکبر برادرم حسین اینجاست نه نگران شد حسین کجاست یه وقتی دن ابی عبدالله علیه السلام این خیام رو دامنه یک تپه ایجاد کرده بود که پشتش اون کوه باشه جلوش هم خندقی کنده بود که از این طرف اگه میخوان حمله کنن اون محاصره از نظر کیفیت حفظ خاندان رسالت حساب شده باشه یه وقتی پشت خیمه‌ها تو دامنه تپه شبهه دلاوراست میشه زینب جلو رو دید حسین داره بوتهای خارو رو میکنه تو نیمه های شب آشورا داداش چه میکنی؟ فردا بچه تو این بیابونا میدوانند فردا از خیام و بناس آتش بزنند همه ها رو گفته این بچه ها میخوان تو این بیابونا بدوند من دارم بوتهای خارو رو میکنم که به پای بچه های من فرو نره اون شب رو به هر قیمت اینا گذارندن من شب آشورا هر سال مقیدم در اینجا روزه ودا رو بخونم یه مقدمه بچینم علت هم داره که ان امیدوارم مشمول انایات امام است همگی باشید و باشیم ان این ودا قلب امام زمان رو سخت به درد آورده و لذا در زیارت ناحیه مقدسم در رابطه با ذباق زیار... وداه امام حسین ولی مقدمه ارز کنم از صبح آشورا درگیری شروع شد حالا اون مشکلات از مکه از مدینه به مکه از مکه به کربلا تو را خستگی نخابیدن دشنام شنیدن عذیت ها شدن حالا شده صبح آشورا از صبح آشورا سنگ میزنند تیر میاد دشنام میدن بود رو آتش میزنند به سوی خیام عوی عبدالله پرد میکنن یاران عوی عبدالله رو به مبارزه میطلبند. یکی یکی یکی همه شهید شد. حالا اسر آشوراست نوبت به خود امام حسین علیه السلام رسیده صحنه رو در نظر مجسم کنید من با این مقدمه ای که هر ساله میگم عرض کنم آقا شما اگر بخواید یه سفری برید که این سفر براتون شیرینم باشه مکه از کربلاست یه سفر زیارتیه با ارزشه. امشب میاید خونه بزن و بچهتون میگید من دو ماه دیگه یه سفر یه ماه باید برم یه مقداری مخصوصا اگر دختر بچه تو خونه داشته باشید که به پدر علاق من باشه بچه های تو خونه که علاق منده به خانواده هستن یه مقداری دلشون هردی میریزه بعد از دو هفته نزدیک شد سه هفته رسیده به اون مرحله ای که من فردا بنا حرکت کنم حالا اگر این پدر داره چمدونشو میگیره اساسشو میبنده این بچهها دورشو میگیرن هی hey به پدر میچسبند هی hey این چمدونشو باش بازی میکنن باباجون تلفنم میکنی یا نه نامم میدی یا نه میشه زودتر بیا یا نه حالا پدر بغل کنه نوازش کنه بله طول نمیکشه تلفنم میکنم امو میاد به شما سر میزنه دایی هست سراغ شماره میگیره با همه این احوال به بچه میگه بابا من صبح برم الان شبه برزم بخواب صبح صدات میزنم هی hey از در اتاق پدر میره بیرون برمیگرده بابا صبح صدام بزنی نکنه من خواب باشم از خونه بخوای بری با همه این حرکات بچه رو, رو روانه میکنه یه وقت نیمه های شب میاد تو اتاق میبینه بچه بیدار داره گریه میکنه بابا جون چرا گریه میکنی؟ آخه دلم برا تنگ میشه پدر حالا جانم به فدایت جان اثر آشورا با اون صحنه کذایی همه شهید شدن همه شهدا رو اهل دیدن حالا اومده پشت خیمه زینب رباب سکینه ام کلسوم علیکندم نسلام خدا حافظ منم دارم میرم صحنه رو مجسم کنید اینجاست که قلب امام زمان رو به درد آورده این زن و بچه ریختن یکی دامن حسین رو گرفت یکی دامن حسین رو گرفت یکی دست حسین رو میبوسه یکی پای حسین رو میبوسه یکی او رو در آغوش گرفته ابا عبدالله به هر قیمتی بود این زنو بچه رو آرام کرد اینا رو تحویل به زینب داد توی خیمه نشون دامن خیمه رو انداخت آرام باشید من میرم یه تپه ای انتخاب کرده بود وقتی میجنگید خسته میشد می اومد رو تپه می ایستاد رجز رو بلند بیان میکرد لا حول ولا قوه الا بالله الله اکبر لا اله الا الله این صدا که به گوش زن و بچه میرسید هنوز مطمئن بودن که حسین زنده است و داره میجنگه و صدا به گوششون میاد رو آرام کرد تو خیمه نشون از خیمه اومد بیرون صور بفرمایید یه قدم میخواد به سمت میدان بره یه قدم نگاه به خیام میکنه اینا آلالله اینا ناموس دهرند در این خیمه ها یه مقدار را رو جلو رفت یه وقتی یه صدای آشنایی از پشت سر نوازشش میکنه محلا محلا یبنز زهرا؟ خدایا نام زهرا دل میبره اون لحظات احساسم نام زهرا مطرح شد محلا محلا یون از زهرا حسین برگشتی فرینه خواهرم خوهرم چی شد برادر کارت دارم واسه حسین استاد که از بیا پایین از عصب اومد پایین مادرم زهرا به من وصیت شد در اون آخرین لحظات روز آشورا زیر گلوی حسین را عوض من ببوش من میخوام زیر گلوچه بموشم؟ ببوشم حسین گلو شابو زینب زیر گلوی حسین رو میبوشی دختر بچه امام حسینی صحنه رو میدید زینب برگشت حسین تصور کرد که برای زینب مشکلی پیش اومده برگشت اومدید زینب تو خیمه نشسته داره خاک کف خیمه ها رو جمع میکنه تو سر خودش میریزه بر مبنای بی که به مقام امامت میخواد بشه دوباره آرامش داد دستی به سینه زینب گذاشت صد رو برای زینب تضمین کرد اومد سوار اسب شد به سمت میدان دید عصب ها از پاور نمی داره هرچی اسب حرکت میده اسب عصب یه وقت پرش دختر خود ورز آلش پای عصم گرفته نمیذاره حرکت کنه بابا جون نمیذارم با تو کاری دارم دخترم قلبم را آتش مزد. فرمود دختر عرض کرد بابا عرضی دارم فرمود بگو گفتا عصف از عصف زمین نیایی نمیگم امام حسین از عصف پایین دخترم بگو در محل زباله خبر شهادت مسلم که آمد تو مسلم رو رو زانونشون یتیم نوازی کردی من یتیم شدن خودم دارم مسلم میبینم میخوام بابا خودت یه دست نوازشی به سرم به عنوان یتیم بکشید حسین بچه رو در آغوش نوازش کرد به هر قیمتی بود بچه رو به زینب داد اینا رو آرام کرد دامن خیمه رو انداخ به طرف میدان رفت جنگ مفصلی کرد که قضیش و فردا از مقتل خواهم خوند همین جور صدای الله اکبر لا حول و لا قوت الا بالله صدا به گوش میرسید زینب و بچه گوششون به دهانه دوختن. صدای حسین بیاد یه وقت زینب دیگه که صدای حسین نه بیاد. دستش میلرزه درده قلبش میتابه تپه زرزان دامن خیمه رو بالا زد دیده اسم بی صاحب حسین اومده در خیمه هی سرش رو به زمین میکومه از ظلیم از ظلیم سر وقتی زینب دامن خیمه رو کنار زد چشمش رو دوبه طرف میده دیدونسه تو گودان قطرگاه شمر با خنجر داریم میاد زینب برای اتفاع امام شرکت کرد شمر میدوید زینب هم میدنیم من می او و شوی مدت من سوی غزی من می نشست من می اشیدو من میکسیده او خنجر کی من از او senden او میوریدو او میوریدو مای چه گذشت در این کنار هی a uh -huh.